داد سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه و آخرین شماره گفتگوی ما رو دارید میشنوید به مناسبت 16 شهریور روز وبلاگ نویسی و امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز بخوام با یکی از وبلاگ نویسانه عزیز که خیلی دوست خوبی هم هست، گفتگو کنم و امیدوارم که این برنامه را دوست داشته باشید، این برنامه آخر ماست و فکر میکنم با این برنامه چهارتا برنامه تقدیم حضورتون شد امیدوارم که از این مجموعه ها لذت برده باشید و این برنامه ها را دوست داشته باشید خب، سلام عرض میکنم خدمت مهمان گرامی عزیز خیلی خوش اومده به این گفتگو و خیلی هم ازش اش تشکر میکنم با وجود اینکه این که مهمان عزیزمون وقت نداشت ولی تشریف آورد تا باهاش گفتگو کنیم خب مریم عزیز سلام سلام ها مرسی ممنونم ممنونم که وبلاگ منو میخونیم ممنونم که وبلاگ من جز وبلاگ های محبوب تو هسته من نمیدم چرا استرس دارم و خیلی جست آدم های مهم رو به خودم گرفتم تکیه دادم به سرمنین خیلی خوبه اشکال نداره فقط یکم صدایت خفص که فکر میکندم ایراد از میکروفون باشه امیدوارم شنوندگان عزیز این رو ما ببخشن در خدمتم. خواهش میکنم. خدمت از من عزیز. خب مریم جان راحتی که من باید راحت حرف میزنم چون دوست دارم گفت گو خیلی صمیمی باشه نرسمی مخصوصا که سندامون باید نزدیکتر باشه یا نهایت تو چند سالی از من کوچکتری از من بزرگتر که این اصلا اوکیه برات چون من لحنم عوض نمیکنم. راحتی که باید صمیمی حرف میزنم یا نه. اگه میشه؟ اگر نراحتی خب سعی کن راحت باشی استرس هم اصلا نداشته باش. یه گفتگوی کاملا ساده به مناسبت روز وبلاگ نویسیه نه من راحت هم ساعت خیلی جالبه بین این همه ویبلاگ نیست خفن چرا من استرس به خاطر صدامه میترسم از دست بودم پشیمون بشم باشیم نه را زیست هر کسی برای خودش هوادار داره و به نظر من اصلا استرس نداشته باش حمادارات یکیش که خودم باشم هستم در خدمت نگران از دست دادن حمادارات نباشم این خاطر صداد نیست که ما بریم و فکر میکنم تا دیمانم صدای تو بدتره پس از این جهت راحت باش بعد صدای تو خیلی بد نیست خیلی هم خوبه و صدای چیزی که آدم خوب خودش انتخاب نکرده بلکه ژنتیک. واسه ایجاد ایجادش شده پس کسی که کسی حق نداره به چیزی ایراد بگیری که آدم انتخابش نکرده چون نمیتونه بگه چرا این سا انتخاب کردی که پس که پس زیاد نگرانش نکاشه حالا مثلا من چقدر حوادارم دارم باورت نمیشه حاطف من اینقدر روی صدام اعتماد به نفس داشتم که تو دوتا مسابقه تو همین بیان بچه ها برگذار کردن بر صدا بود من شرکت کردم ولی درسته تو هر دو تاش از آخر اول شدم و ولی واقعا صدامو قبول داشتم تا این چند ماه پیش یکی اومد در واقع تو همین وبلاگم منو قهوه‌ای کرد از اون موقع اعتماد برفتم دار شد ولی اصلا مهم نیست چون دوباره اعتماد به نفسمو به دست آوردم. خیلی خوبه که اعتماد به نفس رو به دست آوردی. اصلا کلا بعضی عاشقینه دارن که ایراد بگیرن. شما هر کاری بکنید ایرادشون رو می‌گیرن. پس یاد بهشون توجه نکن. و اینکه ما گوینده رادیو نیستیم. ما صرفاً یه بلاگر ساده‌ایم و هر کسی یه صدایی داره. و خب این محتواس که در اصل خیلی مهمه و اصلا صدا به نظر من اصلا مهم نیست. آدم می‌تونه یه فایل صوتی رو شروع بکنه ضبط کنه و خیلی محتوای قوی توش باشه ولی خب صدای خیلی بدی داشته باشه صدا درست خیلی تو کیفیت کار تاثیر داره ولی همه چیز نیست و اگر محتوا خیلی قوی باشه حتی میتونه صدا رو هم پوشش بده خب اصلا به نظر من صدا یک المان خیلی تعیین کننده نیست محتوا خیلی بیشتر مهمه ولی خب اراده دیگه بالاخره میگیرن همیشه تا زمانی که یه کاری هست نقدش هست مسخره کردنم هست توهین کردنم هست تیک هم هست همیشه باید همیشه هست بس بعد پوسکلوف باشی وقتی قراره کاری بکنی کلا نباید زیاد دقت توجه بکنی به نظر من صدات هم خیلی خوبه و خیلی افتخار دادی که داری باهام گفتگو می‌کنی و گپ میزنی البته نظر همه هم محترمه ولی خب فکر می‌کنم تو کاری رو بکن که دوستش داری من یه قانون تو زندگیم دارم این که نظر همه محترم هست ولی مهم نیست خواهش میکنم خیلی عالی عالی عالی خیلی خوبه که این فکر رو داری آره نظر همه محترمه مهم هم میتونه باشه ولی بسیگه به نظر داره دیگه اگه نظر به هدف خرد کردن باشه یا قول خودت قهوهی کردن باشه خب نظر مهم نیست اهمیتی نداره مهم آدم کاری رو که دوست داره. انجام میده پرحال خیلی افتخار دادی خیلی ممنونم که شرکت کردی ممنونم و چکرم اولا همه به من و شنوندگان یه کوچیک ولی جامعه از خودت بده و بگو که کیستی و در این باودیه چه میکنی کاملا آزادی که هر چیزی رو بگی و هر چیزی رو نگی یه معرفی کوچیکی از خودت بکن و چیزهایی رو بگو که برای مخاطب گفتنی باشه و گفتنش اوکی باشه و به حریم خصوصیت کلا تجاوز نکنه. یعنی هر چیزی که گفتنش اوکیه رو بگو. یه بیوگرافی کوچیک ولی جامع که مخاطبان بدونن دارن کی رو میشنونن و اینا از خودت بدی خیلی ممنون میشن. مریم 22 کرمان. انگار دارم اصل میدم. در مورد سن هم نظرت مختلفی وجود داره خودم معتقدم 22 سالمه ولی آدم های مختلف سن های مختلفی رو میگن مثلا 23 دارم 24 دارم حتی 20 هم به میگن ولی خب 22 سالمه کرمان اسمه مریم <تصفح> <تصفح> چی بگم دیگه همین چیز خاصی نیست که بخوام حالا مخاطب بخواد بدونه مگه اینکه بخواد بدونه من بگم یادش تو خیر هست یا همسینجر عالیه زیاد از این رابطه بیوگرافی تو اینا سوال نمیپرسم چون ممکنه سال که میپرسم به حریم خصوصیت راپ داشته باشه و خب حریم خصوصی برای من خیلی مهمه و دوست ندارم اذیت بشی چون در نهایت من سوال میپرسم تو یا باید جواب بدی یا نباید جواب بدی و اگه جواب ندی ممکنه مورد قضاوت قرار بگیری یا اینا بخاطرون کلا اصلا دلم نپرسه بهتره بخاطر این زیاد از این جهت از این زندگی خصوصیت چی میگذره زیاد ازت سوال نمیپرسم و فکر می به همین بسنده می در اصل در مورد حرفی که پیشتر زدی و گفتی این همه بلاگر معروف هست باید به خدمت درس بکنم که علت مصاحبه این نیست که با بلاگرای معروف گفتگو بشه بلکه هاست این مصاحبه منم و من انتخاب میکنم که, که چه کسی برای مصاحبه و گفتگو بینمون اوکیه و خوبه که باشه برای همین یکم اعتماد به نفس داشته باش. من هدفم از این کار این بودش که با دوستانی گفتگو کنم که قلمشونو دوست دارم یا با هم دوستای خیلی خوبی هستین. یکم اعتماد به نفس داشته باش پسر. ببخشید دختر. یعنی یعنی بگی من برادر معروفی نیستم؟ خیلی ممنونم، متشکرم. نه نه من همچین حرفی نزدم. هرچی که تو بگی ازش استفاده میکنم اگه بگی هستی من میگم خب هستی. و اگر خودت میگی نیستی خب پس حتما نیستی من نمیخوام نظر خودم رو تو گفتگو تحمیل کنم خب بهم بگو بگو ببراگ نویستیر از چه سالی شروع کردی چه سالی بود چند ساله می نویسی و از حال و حوانو تفکر توی اون روزا برمون بگو من از زمستون 91 با داداشم اومدیم یک در واقع توی بلاک فا اون موقع توی اون بلاک فا یه داشتیم مشترکن بین دوتامون که زیر نظر یه مؤسسه فرهنگی بود مؤسسه نموری مجله بود مجله شم واقعا یادم نیست سنشی بود چفیه بود سنگر یادم نیست نمورد شهدا بود ما با اونا کار میکردیم با اونا کار میکردیم بعد تا اینکه من دیگه افتادم توی کنکور و اینها 8 تیر ماه 92 که کنکورم رو دادم همون موقع 13 همش 13 تیر ماه من اومدم کوچ کردم به بیان و از داداشم جدا شدم اون موقع دیگه خط فکری مونم جدا شد روزای اول توی ویبلاغم هم همین خوشید شب از تراحیه که می کردم می ولی خب بعدها دیگه دانشگاه رفتم و خیلی کم سر می زدم تا سال نوید و شیش، پنج اسفند نوید که من سر کار رفتم اون موقع زندگیم یه ریتم منظمی به خودش گرفت و من تونستم که دوباره برگردم به این فضا و از اون موقع تا الان سعی کردم نوشتای خودمو بیشتر به اشتراک بذارم آره بابا قبول دارم شوخی کردم باد با वगैरह من قبول دارم بین این همه وبلاگ خفن وبلاگ من اصلا نیست در رابطه با وبلاگ خفن بهت نقد دارم اگر بقیه برنامه هم خودت بشنوی متوجه میشی چرا هیچ وبلاگ برتر و بهتری وجود نداره همه یه سطحن هم. دیگه دوباره نمیخوام اینارو تو این برنامه تکرار کنم ولی شاید برای جالب باشه که من از همون موقع دنبالت می‌کردم من سال نود یک به بیان اومدم ولی زیاد ننوشتم بیشتر خوندم یعنی دم... نه دنبال به معنای واقعی ولی گذری می‌خوندم. پرو رو خدا جدی برو باورم نمیشه دیگه برحال باورت بشه به نظر من به تده دیگه عزیز معتبره هرچی که هست ارزشمنده. ویبلاغ نسبت به هم مقایسه نمیشن چون قابل قیاس نیستن اینام بگیر. اینقدر دوست دارم دنبال کنند های قدیمی رو پیدا کنم که هیچ کدومشون نیستن. هیچ کدومشون دقیقاً هممشون رفتن. با دو تاشونم تو دنیای واقعی در ارتباط بودم یعنی شماره ازشون داشتم ولی گمشون کردم. خاطر فوم سر جنگ داری ها. خب معلومه من وبلاگم رو دوست دارم ولی میگم خیلی وبلاگ منسای خفن بود. من اصلا خودمو بلاگر نمیدونم. اصلا بیا این بحث رو تموم کنیم باشه تا مامانم نایمده آره اونوقت برات نظر میدادم ولی گذاری رد میشدم ولی کاملا بایت معافقم هر وبلاگی مخاطب خاص خودشو داره واقعا <تصفيق> من با حرفت مخالفم ویبلاگ رو با هم مقایسه بشنی ست بار سر جنگم ندارم هیچ کسی از هیچ کسی برتر نیست نظر من اینه وبلاگ هر کسی برای خودش خفنه. این که بگیم وبلاگ های خفنی وجود دارن بهتر از من بدتر از من تعریف تعریفای درستی نیست. هر وبلاگی برای خودش ارزش خواسته خودشو داره مثلا اینطور حرف نباید اصلا توی وبلاگ مطرح بشه چون هر کسی مخاطب و مخاطب خودشو داره. مثلا اینکه ما بگیم گل روز خفنه گل مثلا محمدی پایین تره یا گل یاس بالاتره اصلا هر گلی داره نمیشه مقایسش کرد. من دیگه تو همه برنامه‌ها اینو گفتم دیگه هی تکرارش نمی‌کنن. کاملاً موافقم. کلاً اصلا بحث اینکه که کی بهتر کی بدتر اصلاً حرف درستی نیست. ولی خب متأسفانه رواج داره. البته اینکه این روزا وبلاگ با مشکل دارن و به صمیمیت و با گذشته هم نیستن، همینه. بیشتر خودشون رو به هم می‌بینن در صورتی که نباید ببینن. و محیط دوستانه ای که مثلا من سال 85 و 89 نداشتم دیگه نیست الان. راستی گفتی چه سالی شروع کردی؟ من سیزده تیر ماه 92 اصباب کشی کردم از بلایفا به بیان و دیگه از باقی جدا شدم اون راه خودش رفت من راه خودم ولی شروع این که با محیطی به اسم ویبلای آشنا بشم ویمستون 91 بود ببین به نظر من بلاگر بودن هیچ قاعده و قانون خاصی نداره هر کسی که یک پنل مدیریت توی یک سروری داشته باشه میتونه بلاگر باشه حالا هر چی میخواد بنویسه دقیقا درسته من دقیقا همین که تو گفتی رو دارم از وبلاگ نویسی و فکر میکنم که هر کسی که می تو وبلاگ وبلاگ نوشه بله کاملا با موافقم بله بله و اگهنه که ادعای فهم و شعورشون میشهگه یکی از این فاازاتشون کم بکنن دنیای وبلاگ نو دنیای بهتر میش برای همه. آره یه به نوعی این بنو با موافقم برای اینکه با این تفکر مبارزه کنیم و بگیم بلاگ بهتر و بهتر وجود نداره و هر کسی جایگاه تریبون خودش رو تو وب داره باید چی چیکار کنیم با کسایی که این تفکر رو تو وارد دنیای وبلاگ نمیسی کردن باید چی چیکار کنیم به نظر من کار خاصی ما نمیتونیم بکنیم اینها خودشون به خاطر ریاکشنایی که میگیرن از آدمای اون منفی اغلب که عموماً که میگیرن از آدمای متفاوت میفهمن که موضوع بر سر بلاگ بهتر و بدتر بودن نیست. کاملا درست واقعا. اگر بخواید وبلاگیتو نقد کنی چی میگی بهش؟ فکر می‌کنی ایدئالت رو داری توی وبلاگیت یا نه؟ زمانی که من شروع کردم به نوشتن خاطراتم و روزمرگیام هیچ ایدئالی تو ذهنم نداشتم و عموما برای خودم می‌نوشتم به خاطر همون گفتم که حافظم حفظم واقعا درست کار نمیکن نمیدونم چرا خیلی هم مویز و با دو اینا میخورم ولی نداره من می که یادم نره حالا نه که مخاطبم برای مهم نباشه که اگه نبود نمینوشتم ولی اولا اینطوری نبود یعنی اولا فکر مخاطبم نبودم ولی خودم فکر خودم حول محور خودم بودم اما بعدا که ریاکشنای خیلی مثبتی گرفتم از بچه ها دیگه برام مهم شدن برام مهم شدن که چیو بیشتر دوست دارن از چی بیشتر استقبال میکنن که خب یه چیزهایی دستم اومده ولی باز نمیتونم اون مریم درونمو که خیلی دوست داره اون چیزی که واقعا هست اون چیزی که واقعا هست رو نشون بده سرکوب کنم آره همیشون هم میگه من خیلی بدون سانسور خودمم به خاطر همیشاید مثلا یکی اول وارد وبلاگ من بشه فکر کنه من چه دختره حالا بی عدب و گستاخ و اینطوری هستم دست که من تو دنیا واقعی اینطوری نیستم این دنیا جایی بود برای اینکه من بیام خود واقعیم رو نشون بدم چون تو دنیا واقعی همش نمیذاشتن خودم باشم بعض نخواهم احساس میگرم این این هم چقدر لوسه یکی به میگه این دختر چقدر لوسه درست ما اصلا دوست ن عموما هم اینا بودن که خودم به خودم میگرفتم. درسته کسی حق نداره کسی رو قضاوت کنه و بگه بی یا نیست یا لوسه یا نیست و خب فکر میکنم آدم نباید خود داشته باشه و بعد تو وبلاگش راحت باشه. من وبلاگ زیاد میخونم. درسته کامنت نمیذارم ولی زیاد میخوان یعنی بیشتر وقت من زمانی پنل مدیریتو باز میکنم به خوندن وبلاگ ها میذاره. درسته یکی از وبلاگی که خیلی میخونام وبلاگ خودمه. حتی شده از اول نشستم خوندم. خیلی از مطالبم دوست نداشتم. و خیلی به خودم نقد وارد می‌کردم. حالا جاهایی که خیلی بی‌پروا حرف زده بودم بیشتر هول معیار همین که مثلا ادب و رعایت نکرده بودم. اگر چیز خاصی نبوده. خاص برای من مهمه مخاطبم وقتی میخونه وبلاگ منو از من چه تصویری به شکل میگیره. نمیخوام این تصویر تصویر بد باشه یه تصویری باشه که من نیستم واقعا. بیشتر چه موضوع وبلاگ هایی رو دنبال می‌کنی؟ هیچ چیز موضوع خاصی نیست که بگم مثلا در مورد این موضوعا چند مالشون می‌کنم. کلاً من یه از خوشم بیاد از یه پست به یه پست ببینم خوشم بیاد دنبال میکنم کنم بیشتر آدمهایی رو دنبال میکنم که خلاقانه می برای کل خیلی خوبه. یادت میاد تو تایم هایی که وبلاگ رو شروع کردی حالا هوا تفکر چطوری بود از هم وبلاگ رو چی میدیدی؟ احساس میکردم یک مسئولیت بسیار سنگین بر شانه های من... و من ارشاد مؤمنین مؤمنات رو عهده دارم و خب خیلی تو این فاز بودم دیگه چون تو اون مجلم کار میکردیم کار نمیکردیم ولی باشون همکاری میکردیم به خاطر داداشم فضایی که داداشم توش بود دیگه بعدمون دیگه دیدیم نه بابا همچین چیز وظیفه یه ما نداریم و نیچی دیگه برای خود باید دل خودمو نمیشین بهم بگو تخت ترین اتفاق که تو دنیای وبلاگ و وبلاگ نمیسی برات افتاده چیه؟ بذار این اتفاق برای خودم بمونه م... حالا دیگه تلخم نیست و ترجیح میگم میدم نگم uh -huh. خب شنوندگان عزیز متاسفانه میهان برناممون زیاد وقت نداره برای گفتگو به خاطر ما خیلی از سوالا رو برداشتیم و باهاش فقط در حد اینکه بتونیم یه گفتگویی داشته باشیم گفتگو کردیم تقصیر منم شد چون من یه هوی نیده به سرم رسید و خب عجله داشتم بخواستم تا قبل محرم برسونم و خب تاین نبود و مریم عزیز متاسفانه تایم نداشت و ما خیلی از سوالا رو. کم کردیم و این گفتگو کوتاه شد ولی در هر صورت خیلی ممنونم که لطف کردی و شرکت کردی من یه معزیز البته ربطی به البته گفتگو رو باید یه تک رفت و نمیشه هی رفت و اومد مثل برنامه رادیویی ولی من واقعا از کسی که داره مصابه منو گوش میدن از خواهی میکنم از حاتفم از خواهی میکنم من تایم نداشتم اصلا دیروزم وسط از در واقع صحبت کردن با حاطب گذاشتم و رفتم الانم که دارم میرم دوباره همین واقعا وقت ندارم نمیدونم چرا برای هم همین اوزخواهی میکنم از باتون اگه در نهایت خیلی ممنونم که باز وقت تو به ما داری خب ما سوالات رد میشیم ازش و میرسیم به سوالات اصلی که ازت بپرسم یعنی هم و هدفی برای وبلاگت داری؟ قصد داری تغییر فضا بدی؟ کلان اصلا برنامه برای وبلاگت چیه؟ خیلی دوست دارم خوشگلش کنم دوست دارم یک بگران بیام ولی من نمیدونم. یعنی بلد نیستم داداشم کمکم نمی فقط فا تو همین فضای فیزیکیه مثلا ویبلاغی میخوام تغییر بدم فیزیکی بهش میدن؟ نمیدونم و اینکه برنامه برای وبلاگم قصد دارم بنویسم بنویسم بنویسم فکر نکنم هیچ چیزی به جلو من بگیرد نوشتن در وبلاگ <تصفح> مگه اینکه ولشکن و همین دیگه و گرنه و هدفی برای وبلاگم واقعا ندارم. وبلاگم یه جایه که من میتونم. بدون ترس از قضاوت شدن خودم باشم و هر چیز رو که نمیتونم تو دنیای واقعی بگم بیام اونجا بگم یه, یه حالت تخلیه روانی برام داره و وقت هدفی براش نداشتم یه جایی بوده برام مثل صفحه اینستاگی رو البته خوب قطعاً بیشتر از صفحه اینستاگی هم دوستش دارم ولی ایدالی براش نداشتم چون بهم آرامش میده خیلی دوستش دارم اصن دوست همینجوری بمونه همین شادم مثل سال 93 که یهو رفتم یهو برم ولیش وقت پاک نمیکنم وبلاگم هستم اینجوری مثلا ممکن شوهر کردم رفتم ولی مم... میمونه میمونه که هر وقت خواستم دوباره خودم پیدا کنم برگردم بهش خب آرزویت برای بلایستان و دنیای ویبلاغ چیه بهمون بگو <تصفيق> سؤال ها میپرسیاته به خدا من آرزوی برای بلایستان ندارم برای دنیای ویبلاغ هم ندارم من فقط میگم اگه میگی همچین آدمایی وجود داره میگم که کاش سری اون جایی رو که مخصوص این کاراشون این روابط هست رو پیدا کنن و برن اونجا اینجا رو کنن ولی من اینقدر ندارم ندارم چی بگم خب وقتی طالبش فکر نکردم باشه اشکال نداره منم امیدوارم اون کسایی که دارن این رفتار ریزش دومی میکنن به قول برن اون جایی که جاشه و محیط رو ترک کنن یا اینکه حداقل ترک نکنن داشته باشیمشون ازشون استفاده کنیم و رفتارشون رو عوض کنن اه اهل کتاب هستی؟ اه چه کتاب یا کتاب هایی رو دوست داری؟ یعنی کتاب کدوم کتاب است که اگه کسی قرضش بخواد به کسی قرض نمیدی؟ نمیدونم اهل کتاب هستم یا نه ولی دوست دارم کتاب خوندن رو و سعی میکنم حداقل اقل دو, دو ماه یک بار یه مبلغ مثلا حدوداً پنجاه تا سی هزار تومن برای کتاب بذارم کنار می دونم کمه ولی سیم رو میکنم توی کتاب خونم این کتابای زیادی هستش که دوستشون دارم کتابای هدیه زیادی وجود داره از دایین از بابام از آرسه که خب اینا رو حاضر نیستم به عشقی بدم اما بخوام خودم اون کتاب باشه که حالا نخوام بکرسی بدم مثلا دزیره من کتاب دزیرم رو به هشکی نمیدم البته تا الان به دو نفر دارم و برای یعنی کتاب است که سخت دل میکنم ازش و به الان دارم کتاب ها نگاه میکنم پس ببینم کدوم یکی رو دیگه کتاب دوست دارم واقعا دوست دارم و خیلی مثلاً, مثلا کتاب الان این نح ستاره های بخت ما مثلا این... اینو من خیلی اصرار کردم خواهرم بخونه یعنی خیلی دوستشم گفتم بیا کتاب ببر بیاردم کتاب ببر بخون اینطوری نیستم که نخوام یه کتابی رو به یکی بدم ولی مثلا این کتاب کتابه آنگاوالدا رو نمیدم چون دوست دارم کتابی مورد علاقه من م... ولی میدونم کلا خیلی مبهم حرف زدم فقط بهت بگم که مشکلی با قرض دادن کتاب ندارم یعنی اونقدر نیست که باید. دلن میخواد اون لذتی رو که من از خوندن یکی دار بودم خوهرم اون که دوستش دارم خواهرم روخترخاله هم دوستم اینا هم اون لذت رو بچشم و این که بلی خوب هم خیلی مثلا هم الان همین الان دزیرا پیش ای که از دوستامه دو روزگاه بهش پیام میدم میگم آبگوش که روش نریختی نمیدونم تو ماشینه تو آفتاب که نزاشتیش روشون خیلی حساسم خیلی خوب اگر میشه یه کتابی که دوست داری یا یه کتابی که توی قفصت هست و بردار و ما رو یه پاراگرافی که خودت دوست داری ما رو مهمونش کنم و بگو چرا ما رو به این پاراگراف مهمون کردی اگه می‌خوای؟ آها پیدا کردم یه پاراگراف پیدا کردم تا جایی که یادم از کسی را ندیدم که از شنیدن صدای زب چوده خودش راضی باشد مثل من هرچند آن صدا عین صدای خودمان است ولی نمیدانم چرا قبول این حقیقت تا این اندازه برایمان دشوار است. شاید که از دلایلش خارج شدن از محدوده عادتهای من باشد. در واقع اتفاقی که میافتد با, با اتفاقی که با آن عادت داریم تفاوت دارد. بار اولی که صدایم را شنیدم، اونقدر شکی شدم که اصلا نمی‌خواستم باور کنم. منم دقیقا همینطوری بودم. ز... حاضر بودم هر چیزی را از کیفیت و خرابی ضبتصود گرفته تا سرموخوردگی خودم بهانه کنم که فقط آن صدا صدای من نباشد ولی بود و از آن بدتر این که این اتفاق علاوه بر صدا در فیلم و در عکس هم میافتاد در فیلم خیلی بیشتر و در عکس کمتر و تقریبا بدون استثنا آدمی را میبینم که هیچ ربطی به خودم ندارد و متأسفانه در بیشتر موارد از آن... از آن آدم که خودم باشم نر من ممنونم که ما را یه پاراگراف مهمون کردی و خیلی قشنگ بود خوش میکنم خوش میکنه. میتونی اه، من رو نظرت رو راجع به من بگی و اصلا من برات کیم خب من بارها راجع به تو فکر کردم و حتی در مورد تو با عارف حرف زدیم بدون رو رودروایسی باید بگم به نظر من تو تو یک آدمی هستی که نمیخوام بگم مرموز ولی آدم سر از کار در نمیاره یعنی اینکه نمیدونم چه جوری بگم ولی یه آدم چه بگم باید که کن فکر کنم یک آدم فعال و پر انرژی هست یعنی قشنگ انرژی تو وبلاگت مشخصه خب و در این حال نیمه های پنهان زیادی داری همه ما ها توی ویبلاگ نیمه پنهان داریم خود من ولی احساس میکنم نیمه های پنهان تو بیشتر نمیدونم چرا اینطوری حرف میزنم واقعا نمیدونم فس خودم ناامید شدم داشته گفتم ولی ستا نیمای پیناه تو بیشتره بیشتره و این که از نیه که همه چیز رو برود نمیدی این آنتی ولی در کل من به عنوان ویبلای نویس که زمانی با تو آشنا شدم خیلی با سواد میخوردی ویبلای نویس باسوادی میخوردی خیلی ممنونم در رابطه با تعریفهایی که کردی ازت خیلی ممنونم خیلی لطف داری بیشک از لطفته و از این جهت که خیلی نیمه پنهانی دارم خب از این جهت آره خیلی از احساساتم رو گاه نشون نمیدم ولی دیدی دیدی دی من آدم شناس خوبیم. من یادم خوبی من, خوبی من دبیرستان که بودم، بچه ها باورت میشه دست من من نگاه شناس آدم شناس خوبی هم منو میگرفتن میبوردن مثلا حالا پسره مثلا اون بر بود نشونم میگفتم مثلا این دوست تو به این چطور آدمیه باورت میشه و من میگفتم عین اون در میدونم عین اون چیزی که میگفتم بالاخره این هم یکی از استعدادهای های درونی منه دیگه به لحاظ اطلاعاتی راست میگم اسمم واقعا اسممه چه میدونم سند هم میگم واقعیه ولی فقط اسم کشوری که نوشتم رو نمیگم اونم دلیل داره که اگر دوست داری بدونی و مخاطبانم قطعاً امیدوارم یعنی فکر میکنم که دوست داشته باشم بدونن بهت میگم چرا اینو نمیگم بزر تصدیل کنم همه ما توی دنیای واقعی هم نیمای پنهانی داریم ولی واقعا چون زیاد ویبلاکتو نخوندم نمیتونم چیز خاصی راجع بهت بگم برای با عارفه که حرف میزادیم به همین نتیجه ها میرسیدیم استعداد خیلی خوبیه برقل آدم شناسی خیلی خوبه نه نه نه اگه نمیگی و دلیل داره نمیخواد نه دارم میگم یعنی همچین نظری راجع بهت داریم هم. برای خب اگر دوست داری اون دلیلش گفتن اون دلیل بر من اوکی اگر دوست داری بگم خب میتونی دلیلش بگی چرا نمیگی دلیل رو بگی اوکی میگم برای تو و. مخاطبان جالب باشه و خیلی دوست دارم بدونن که چرا من حساسم و نمیگم اینو. راستش من روزی که همه کارهام اوکی شد و تونستم به قول معروف از ایران خارج بشم رفتم یه دونه وبلاگ ساختم با دامین دات آر و کاملا یک زندگی شیشه ای اونجا درست کردم و هر اتفاقاتی میافتاد و هر احساساتی که داشتمو می نوشتم از مهمونی که خاله‌م گرفته بود تا همه چیز رو اونجا می نوشتم حتی به اعتیاد شدیدم به پفک نمکه می در این حد و خب همه, همه چیز رو و همه احساسات هم رو می نوشتم اونجا و یه وبروکی خیلی خیلی دوستش داشتم وقتی که شروع کرده بودم چون راضی بودم چون همه چیز توش اوکی بود راحت می نوشتم خالی می شدم و اینطوری همه چیز رو من اونجا می نوشتم تا اینکه که بلیت هواپهما و اکس حسوسو مشکلات و اینا رو نوشتم بعد نوشتم که من دارم میرم و این جور چیزا و سلام اروپا و اینا رو نوشتم و کامل بعد حتی مثلا این پست دادم سلام اروپا سلام م -م. یا سلام م -م. که اسم یه کشوری که نمیگم بعد نوشتم بعد یه هو یه اتفاقی که افتاد و خیلی تحجیب آور بودیم بودش که یه هم موج عظیمی از کامنت های واقعا کننده و دردناک به سمت من اومد به صوری که اصلا حتی نتونستم تحملش کنم که به دندونامون پاشدی رفتی خارج به جهنم حتما دزدی کردی رفتی یا چه میدونم حرومزاده اغدهی اولا زیاد توجه نکردم گفتم که حالا مردم مشکل دارن حالا یه جوری میخوان تختیه کنم نظراتو پاک میکردم بعد از خوبیا بدی‌ها شروع کردم نوشتم میگفتم مثلا این چیز ایراد داره میومدم فوش می‌دادن که تو مثلا غلط کردی یه چیز زشتری می‌گفتن من می گفتم مثلا یه چیزی خوردی حلکی داری دروغ میگی خارج رو بد نشون میدی مثلا میگفتم این خوبیه رو داره باز میومدن فوش میدادن که تو داری جوان ها رو نمیدونن تو داری پوز میدی و اینجور چیزا اصلا من هر کاری کردم خیلی نظرات منفی بدی گرفتم به علاوه اینکه حسابی فوش گرفتم بعد خیلی حالا گرفته شد حتی مثلا من یه روز نوشتم که من خیلی دوست دارم اگر اینجا موفقیت بران حاصل شد کسایی که خیلی دوست دارن بیاند رو من کمکشون کنم بیارم خب و اتفاق دردناکی که افتاد این بودش که بازی سری و بعدم فرشت دادن که ما نیازی به جور کارا نداریم و نمیدونم تو بخوای گول بزنیم یه همچین چیزهایی مینوشتند نمیدونم از جویی و راجب اینجور چیزا اونجا بود که خیلی دلم شکست و ببراگی که فقط سه ماه بود بازش کرده بودم و کامل داشتم توش می نوشتم کامل پاکش کردم و دامینش رو هم کلان آزاد کردم و از اون روز به بعد و از اونجا بود که تصمیم گرفتم که کلان در موردش حرف نزنم و به خاطر اونی که این وقتی که الان تو صفحه اینستاگرامم رو میبینی یا وبلاگم یا هر جایی رو میبینی اصلا زیاد راجع به این قضیه حرف نیست اصلا حرف نمیزدم ولی خب دروغم نمیشد بگم این دوستا میگم ایرانم چون در نهایت از این جاهایی در دیگه که نیستم واقعا و خب متوجه می شدن دروغ می شد خیلی بد می شد که مخاطب اعتمادی بی بین منو مخاطب وجود بیاد ولی خب فقط بگم اروپا هم خارجم ولی خب دقیقا نمیگم کجا که باز اون حس حال حالم رو بد نکنم و باز یادم نیفته ترجیم اینه که وقتی که یه سایت درست درمون برای خودم پیدا کردم یا دان... یک... یه سایت درست درمون برای خودم درست کنم وقتی که دانشگاه تموم شد و اونجا دیگه راحت به دیگه اون دیگه وبلاگ نیست اون دیگه کلن سایته و کلن قضیهش جداست ولی خب بعدم فکر نکن که یه نفر بود صد تا کامنت میدادا نه آی پی آی رو من نگاه میکردم آی پی آی متعددی بود مختلفی بود آدم های مختلفی میمدن نظرات خیلی منفی میدادن من رو اغده خطاب میکردم و می خب به ما چه چیکار کنیم اروپایی جهنم که اروپایی بعد بعد بعد از اینکه اونو بستم آره نه جدی دلیل تو فکر میکنم دلیل محکمیه برای اینکه نخواهی بگی چون دیدم این مدل رفتارو نه در این مورد در موردهای دیگه این از اغداهای درونی خود آدم ها در که وقتی میدن یکی شادیشون داره با برقیش شریف میشه نمیتونن ببینن آره دقیقا من نمیدونم حالا اغده درونی بود اسمش چی بود مهم نیست مهم اینی که این اتفاق افتاد اینشالله بخش فواله تریف او خنون رو پایی <تصفيق> ببینشون خیلی من خیلی یه زمانی برم اون بر. میفهمم آره نه میفهمم جدی حاطفی میفهمم چی میگی؟ از این آدم دیدم ها دورو برم. تو با اقتدار و محکم برو جلو و کاری به هیچی نداشته بود. خیلی ممنونم لطف داری انشالله تو هم بتونی بار زود برسی و بیای اون بر ولی خب من بعد از اون اتفاقات اونو بستم پاک کردم بعد دو ماه سه ماه استراحت کردم بعد دوباره شروع کردم دوباره دامین جدید و جدید و دوباره چالش های جدید پست های قوی به چالش کتابخونی را انداختم با یه ویدیو های خیلی قوی این یعنی یک ویدیوهای خیلی خوب درست کردم براش اصلا یه سیستم خیلی عالی درست کردم چالش کتابخونی ولی خیلی زحمت کشیدم ولی باز اونم دیدن اش و بازم نظرات منفی گرفتم و بعضی سری آدمای می اومدن پستامو توندخونی میکردن بهم میگفتن شعور و سواد ندارم اونجا هم خیلی اذیت شدم و با اونجا رو بستم و دیگه ننوشتم تا دو سال تا آره آره آره, آره، فکر میکنم اون بستم بعد دیگه ننوشتم. آره خلاصه ای کلام این که اینو کامل بستم و دیگه ننوشتم. ولی خب خیلی فشار می اومد دوست داشتم بنویسم. ولی تا اینکه یکی از دوستام یه وبلاگی باز کرد به اسم کوچه دوازدهم. اومد گفتش که من میخوام یه وبلاگ بسازم ولی میخوام ناشناس باشم. چی کار کنم گفتم بیا کوچه دوازده امو درست کنم منم کمکت میکنم گفت میخوام عکس ماکس بذارم. طبیعی دیده بشه میخوام نمیدونم فلان کنم تا اینکه من حتی عکسایی که اون میذاشت تو من براش میگرفتم میفرستادم در صورتی که ما اصلا حتای کشورمون یکی نبود ولی خب من براش عکس میفر می... میگرفتم توی تلگرام میفرستادم بعد گفتش برای من یه شماره بگیری شماره موبایل از اون کشوری که خودت هستی توش من میخوام تلگرام نسب کنم، تلگرام ندارم. بچه های ویبلاگ از من تلگرام میخوان که من با شماره رفتم خریدم براش فرستادم، درست کردم تلگرامش رو. بعد یه مدتی اون می نوشت. من منم یه سری پُستایی رو براش میفرستادم که توی کوچه 12اُم این رو منتشر می‌کرد. منم قالبش رو خیلی دوست داشتم، وبش رو خیلی دوست داشتم و دوست داشتم خب مطالبم داخلش منتشر بشه. یعنی من مطالب رو براش میفرستادم. بعد اون پست میکرد تا اینکه دوباره انرژیم برگشت و گفتم که چرا من دارم مطالب بامو میفرستم که به اسم کسی دیگه داره منتشر میشه به خودم با اسم خودم دا رو منتشر کنم چون بعضی هاشون خیلی خوب بود من بعدا خودم نشستم پای کوچه دوازدهم اونا رو خوندم و دیدم که واو چه پستایی نوشتم و داره به اسم یه شخص دیگه ای حالا هر اسمی به اسم کوچه دودهم داره میاد بیرون اسم منم توش گمه پس تصمیم گرفتم که برگردم به دنیایی ویبراک نیمیزی ولی خب با برگشتن من و چند تا پست زیر مشکلاتی پیش اومد بعد من با اون دوستم به بگو مگو افتادیم من شمارم رو پس گرفتم و اینا ولی خب در نهایت حاطفتاد کلیک کلیکو باس کردم ولی قبل اون نه من قبل اون حسابی ازیت شدم و این مدتی نمی نوشتم ولی خب یه مدتی به این دوستم مطالب رو میدادم اون منتشر میکرد به عنوان وبلاگ نوشت یادم میاد ولی بعدش دیگه خودم شروع کردم و برگشتم آره آره کوچه دوازده همو یادمه چی شد کجا رفت کوچه دوازده هم نیست کوچه دوازده هم یکی از دوستای من بود که دیگه دوست نداشت بنویسه و رفت و یک بگو مگویی که بین من و اون پیش اومد باعث شد که دیگه رفتنش مصمم بشه و گفتش من دیگه نمی نویسم بعدم خیلی از دنیای ویبلاک نویسی و خالخان با جیبازی هاش و می گفت آدم های کسی توش زیادن و خیلی شاکی بود از همه و گفت حالم به هم می و دیگه نمی خواهم بنویسم و کلن رفت و بعدم من ازش ناراحتی داشتم دیگه ما منم ناراحت کردم، و منم ظاهرا اون رو ناراحت کردم و دیگه کلن خبری هم ازش وقته بعد خب امروزم گاهی وقتا تسلیم میشم گاهی وقتا اذیت میشم گاهی وقتا مورد بیمهری قرار میگیرم ولی میخوام بمونم و میدونی چی منو نگه داشته و باعث میشه این راه های بدم و بنویسم اون چیزی نیست جز پول خاطر این حزینه های خیلی سرساماوری که من برای این راه کردم مجبورم بمونم نمیتونم ببندم من نزدیک 700 هزار تومن پول یه دونه هاستی رو دادم که توی سروریه که من بتونم ازش ساب دامین بگیرم و اونو به بیان بسزم کنم یعنی blog.hafteh.click 700000 تومن پول هاست داره 60 تومان هر سال به بیان پول میدم که امکانه دامینو اسکریپت و این جور رو برام فعال کنه و خود دامینم در حدود 150 تا 60 تومان هر سال باید پرداخت کنم مجموعا 760 و سد و میشه 850 و 910 و ده و ده هزار تومن هر سال برای من هزینه داره بخاطر این حزینه سرسام آوره که من رو نگه داشته فعلا همین این به خاطر این هزینه است که من موندم نمیتونه هزینه رو به باد بدم نمیتونه پس بدم و پولم رو بگیرم بخاطر این موندم دیگه انوز موندم در خدمت شما قرارم با موفقیت تحصیلاتت پشت سر بذار یو حالا یا بغردی رون یا اگه می‌خوای همون توی پندهی خوب داشته باش ام نیستیاته خیلی ممنونم از لطفت سوال که هست سه تا دیگه ازت نمیپرسم و اینم بگم که من بخش دونیتی رو برای این گذاشتم که یه قسمتی از خزینه‌ام بابت خزینه نگهداری هاتفتاد کلیک خزینه بشه همین خب سال بعدیم اینه که یه موسیقی یه موسیقی لطف کنی و شنوندگان این برنامه رو مهمون کنی که توی تیتراژ پایانیمون برای شنوندگان عزیزمون پخش بشه و این رو تو دعوتشون می‌کنی موزیکو که بشنون. اگر موزیک توی یه آلبوم خاصیه و فروش میده ما فقط 50 ثانیه‌اش رو میتونی پخش کنیم و اگر نیست به عنوان تیتراژ پایینی به صورت کامل پخش میکنیم به مخاطبان و خب این هدیه توئه. و بگو که چرا ما رو این موزیک این ما رو مهمون کردی با این موزیک و اینکه حست بهش چیه؟ یه هفته پیش آلبوم ابراهیم محسن چاووشی رو خریدم ولی هنوز به دستم نرسیده. همین صبح تماس گرفتم پست و رسیده بود حظ همون یه پنجه ثانیه رو میذاشتم. ولی این متاسفانه چون نرسیده میام میگم میخونام برد میزاشم. با مثلا از این آده ها نیستن که با موزیک آروم بشم با موزیک این مثلا حتی گوش دادن به موزیک هم حسله میخوام برای گوش دادن به موزیک و از اینا دور افتاد برای می من برای گوش دادن به موزیک باید حوصله داشته باشم باید حالشو داشته باشم و اینکه اصلا از من نیستم که با موزیک آروم بشم من عمولا با سکوت آروم میشم یه جا با سکوت کامل باشه ولی دوست دارم موسیقو خیلی دوست دارم یه مدت تا خواستم برم ستار ستار رو یاد بگیرم رو ولی خب نرفتم الان یک موزیک خیلی خفم برتون میفستم حال کنین باش. آهنگ همیشه هست از محمد معتمدی و خیلی آهنگ خفنیه چند وقت پیش بعد عملم حالم که خیلی بد بود با آراسه گفتم که برام چند تا موزیک بفز این یکیشون بود که خیلی شدید از موقع باهم گوشش میدم به طوری که الان حالم دیگه باره ازش باهم میخوره ولی نه یعنی تا خسته نشدم عجب که یک ماهو نیم مداوم دارم گوش خسته نشه. خیلی ممنونم امیدوارم شنوندگانمون دوست داشته باشند توی این برنامه نمیدیدم تو شانس توه، شانس منو نمیدونم صدای جاروبرقی و صدای مته و برش و ماشین و انواع اقسام نویزا رو ما داشتیم. و متأسفانه نپذیر است شنوندگان عزیز من معذرت میخوام ولی خیلی ممنونم که ما رو این موزیک بهمون کردی و شنوندگان عزیز تو تیترج پایانی این موزیک رو میشنم و امیدوارم که دوستش داشته باشم خب سال بعدی یعنی یک مونده آخری و اونم میه که اگر قرار بود جایه عوض بشه با من گفتگو کنی و از من سوال بپرسی چه سوال لای رو می بین یک تا سه تا سوال رو بپرس ولی من الان این سوالا رو نمیشتم وقتی که خواستم پادکست رو منتشر کنم میشتمشون و جوابش رو بهت میدم که میتونی وقتی که پادکست منتشر شد جواب رو بشنوی سال تو بکن خب من سال خاصی ندارم واقعا ندارم. فقط ازت می چرا می نویسی؟ و چی شد اینکه با فضایی به اسم وبلاگ آشنا شدی و اینکه تو الان که توی کشور او پای زندگی می کنی اگه برگردی به سالهای قبل که ایران بودی باز تلاش می گردی که بری؟ و حتی زودتر میرفتی معلومه که میرفتی و خب من را میکنی مثلا سایم گردی زودتر از این چیزی که رفتی رو میرفتی چه سوالی شد چه رفتی رفتی توش بود خیلی ممنونم از سوالاتت و توی پایان گفتگو بهشون جواب میدم حتما و همین و سوال بعدی منه اینه که به نظرت مریم تا کی نویسه و به نظر توی دنیای وبلاگ نویسی یه روزی کاملا از بین میره یا نه همیشه تا آخر هست مریم می نویسه فعلا که می نویسه تا زمانی که دل و دماغ براش مونده باشه می نویسه و دنیای وبلاگ نویسی هست نه تا آخر هست فقط این ما مریم ها و حاطف ها و <تصفيق> جدی ما هستیم که میریم ولی میاد هر روز ویبلاگینس های میاد که دیگه رسالت حفظ دنیای ویبلاگینسی به دوش اوناست دیگه اینجوری نیست که از بین بره من فکر نمیکنم. ولی خب به خاطر اومدن شبک اجتماعی خیلی خفن. سرمثل یکیش ای مثل اینستاگرم من خودم علاقه خاطر به ستاگرام دارم شاد کمرنگ تر بشه ولی اونایی که واقعا وبلاگ رو دوست داشته باشن نمیذارن این فضا از بین بره. خیلی ممنونم که جواب دادی ولی فکر کنم حاطف ها تا بد باشند من خودم خیلی دوست دارم که تا وقتی زندم وبلاگ داشته باشم و بنویسسم اگر ویبلاگی من وقتی خاموش میشه که مرده باشم چون دوست دارم بنویسسم خیلی ممنون که جواب دادی و اینکه ازت میخوام که همیشه بنویسی لطفا و همیشه باشی و همیشه قلمت گرم باشه. و سوال آخر که از همه شرکت کنندگان در گفتگو میپرسم و کپی, ک... کپی گرفته از یک پادکست خیلی معروف و محبوبه که منم گوشش میدم و خیلی دوستش دارم. وقتی می تغییر حالت کوپیش کردم و اون اینه که درست اون لحظه که از نوشتن خسته شدی و دیگه میگی بس بود دیگه نمیتونم وقتشه و بلاگم رو پاک کنم و برم و واقعا بخوای بری چه حسی چه نیروی، کلا چه چیزی چه کسی کلا چی باعث میشه که از این تصمیمت منصرف بشی و از نو شروع کنی و به نوشتن ادامه بدی اون چیه ما بگو من خیلی وقت این حس این حس بهم دست میده ولی من سای میخوام بهش دست ندم بدون شوخی خیلی این حس میاد سراغم ولی من میگم امروز نمیگم می نمیگم تو الان که میخوای حفظ کنی الان که میخوایی بذاری بری بذار باشه بذار باشه بذار آروم چی فردا هنوز وقت دیگه فردا میای حذر کنی و خب میبندم پنل و میرم فردا میام میبینم نه چقدر دوستش دارم واقعا یکی از جایی هست که نمیتونم ازش برم یکی وبلاگ یکم صفحه اینستاگرامم دو تاشون تکام کامنت گفتم جلوتر که واقعا مثل خونم هستن آدم هیچ وقت خونش رو ترک نمیکنه شاد بره جای دیگه ولی باز میگرده. باز دلش بر خونش تنگ میشه و من بنویشتن ادامه میدم اما هیچ وقت هیچ وقت نخواستم هرفه ای بنویسم، نویسم نه وقتشو دارم نه رو دارم همین نوشتن عادی خودم چیزی که تو ذهنم میاد رو میارم روی حالا ورق یا تایپ میکنم اینو ادامه میدم تا الان یکی از لذت هایی که از زندگی موردن خوندن نویشت های خودم و نویشت های بقیه بود و کسی که دوستشون داشتن کسی که خفن نمیشتم. نوشته‌هاش رو دوست داشتم. حالا خفنم نمیشه نوشته‌هاش رو دوست بشم. لذت از این عجیبی رو برمی‌د. خیلی ممنونم و نظرت در مورد این گفتگو. خیلی خیلی خیلی گفتگو یه باحالی بود. دوست داشتم مرسی. خواهش میکنم نظر لطفته. خیلی ممنونم که شرکت کردی با اینکه وقتت خیلی خیلی محدود بود و مجبور شدیم خیلی از سوال رو صحبت نکنیم، گپ نزنیم ولی لطف کردی. ببخشید که خیلی عجلی بود و خیلی ازت ممنونم خیلی ممنون که شرکت کردی و امیدوارم همیشه موفق باشی و همیشه توی خونت بنویسی گفتگوی خیلی خوبی بود هاتف مرسی ممنونم که من دعوت کردی ممنونم که ازم خواستی با مصاحبه کنم ممنونم که من اینکه از بلوگای محبوبت بودم سوالات خیلی خفم بود واقعا خودم کیف کردم ها هرچند خود استادم ناراحتام ولی واقعا خودم کیف کردم. ممنونم، متشکرم و, و خدا نگهدارتون. و ببخشید. من یه چیز یه چیز بگم اینکه من معذرت می‌خوام. هم به خاطر وقتم، هم به خاطر اینکه وسط گفتگویی میرفتم میومدم اذیتت می‌کردم. عذر می‌خوام و اینکه خدا نگهدارتون. <تصفيق> عزیز گفتگو می کردیم و خیلی ممنونم که شرکت کرده بود میرسیم به پاسخ سوالاش برام گفتی که سوال خاصی نداری ولی سه تا سوالم پرسیدی اما اشکال نداره من جواب میدم می نویسم به خاطر اینکه باشم توی برنامهی دیگه من توضیح دادم اینو فقط اینو خلاص اینجا میگم و اینکه چطوری با این فضا آشنا شدم اینکه من همیشه دوست داشتم یک وبسایت داشته باشم دنبالشو گرفتم بعد یه روزی توی نظرات از یک وبلاگ نویس پرسیدم که چطوری میشه یه همچین چیزی داشت و اون به من جواب داد که برو سایت persianblog.com اون موقع و اونجا یه دونه برای خودت بساز و این شد که من شروع کردم سال هشت دو, دو دو یا سه یادم دقیق نمیاد چه سالی بود اون و اینکه در مورد سوال بعدیت هم بگم که آره دوباره این کارو میکردم دوباره تلاش میکردم و صد البته اگر اطلاعات الانم داشتم و میدونستم قراره چی پیش بیاد بله زودتر میومدم خیلی زودتر میومدم خیلی زودتر میومدم خیلی جواب ترخی بود ولی متاسفانه همینه من خیلی زودتر میومدم متاسفانه زودتر خارج میشدم عزیز این آخرین برنامه بود خیلی ممنونم که این چهارتا برنامه ما رو همراهی کردید لطف کردید گوش گرامیتون رو به ما سپردید خیلی ازتون ممنونم من حاطف بودم در ادرس دات دات کلیک و خیلی خوشحالم که تونستم به نه این پروژه رو بگم و تمومش کنم از اینکه هم بودید سپاس گذارم میریم که تیتراژ پایانی که مهمون عزیزمون بهتون هدیه کرده بود رو بشتویم ازتون خداحفظی میکنم و شب و روز روزگارتون خوش سکوت دلت را به هم میزند سراغاز ویرانیت میشود کسی که کنارت قدم میزند کسی که کنارت ادامی به نفس گرم خودت که پیراهنم را گرفتن نرو به شب پرسه های پر از آرزو که در حسرتم پا گرفتن نرو به احساس معصوم من تکی کن دلت را به دست دل. که کردن بده به من جراته تکه کردن به شوره جاده ها به آرامش ماندنت فکر کن به من که دلم را گره میزنم به چینهای پیراهنت فکر کن من از ابتدای جهان یک نفس به تاریخ چشمان تو زدم. دلم را از این راه پر حادثه به دنیای امروز تا پر زدم به احساس معصوم من تکی کام دلت را به دست دلم من بده در این لحظه های پر از دل هره به من جرعت تکی کردم به من جراته تکه کردم